سوره حشر چون بحث حشر در, در این جامعه در حشر یعنی جمع شد این یک 101 سوره هست از سوره های مدنی هست و موضوع این سوره هم چی هست؟ موضوع این سوره هم جهاد است. اما این سوره کلن بر اساس گفته مفسرین این سوره کلن ناظر شد شعن نزول این سوره در رابطه با گروه و قبیله نذیر هست که از قبایل یهودی بود ما برای اینکه این سوره را بفهمیم اولا من مقدمتا چند تا مطلب خدمت شما عرض می کنم بعضی از مطالب قبلا گفته شده تکراری هست بعضی ها برای شما جدید هست قبلا خدمتش ما عرض کردم که یهود از راه های دور و دراز آمده بودند در مدینه طیبه به نیت اینکه آخرین پیامبر پیامبر خاتم می آید و از او استقبال کنند در کنار او باشند یار و یاوران او باشند چهار گروه هستند در مدینه و اطراف مدینه بودند یک بنو قریزه دو بنو نظیر سی بنو قینقا که اینا همین کنار مدینه بودند چهار یهود خیبر که او فاصله داشت از مدینه فاصله زیادی داشت لذا یهود بنو قینقا در سال دومی هجری وقتی که رسول الله برای بدر رفته بود اونا خیانتی کرد یک زنی مسلمان رفته بود در همون غلعیشون آبادیشون شیر بفروشه یکی از اونها خباست کرد و شیطنت کرد به این زن تعرض کرد لباسش را کشید تا این زن بیهجاب شد یک مسلمانی وقتی که این صحنه را دید یک مسلمانی به غیرت آمد و غیرت دینیش برداشت نکرد اون یهودی را فوراً کشت حمله کرد به اون یهودی او را کشت از بین برد و اون یهودی ها باز حمله کردن در انتقام اون مسلمان را شهید کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از بدر برگشتند و وقت دیدن که این شرارت را یهودی کردند خباست را یهودی کردند به یهودیها فرصت داد ببین پیغمبر همیشه از تدبیر کار می گرفت فورا احساساتی نشد گاهی بعضی از ما احساساتی میشیم، حمله میکنیم، حمله که میکنیم؟ معلوم نیست چی بشه ضربه را خود خیلی از جوان های ما همین احساسات داره گایی که میگیم که صبر کنید تدبیر فکر میگید ترسو هستید لذا آن حضرت صلی علیه و وسلم حمله نکردند قطعا اگر حمله بکرده بک اونها آمادگی داشتند ضربه میخوردند آن حضرت مهلت داد یهود بنی قینقارا گفت که یا از اینجا میرید چون شما عهد را شکستید یا اینکه ما به حساب شما میرسیم اونها هر, هر کاری کردن امروز فردا نه آخر مجبور شدن رفتند وقتی که رفتند در سال سوم هجری جنگ احد شد که شما صبح در سوره آل عمران جریان احد را خاندید در جریان احد و در جنگ احد بعضی از یهودیها و بعضی از کفار و منافقین مقداری جری شدند چون دیده مسلمانان ضربه خوردند شهید شدند شکست خوردند لذا یکی از یهودی ها که بسیار سرسخت دشمن مسلمانان بود به نام کعب ابن اشرف و رئیس همین قبیله بنو نزیر بود در سال سوم بعد از معرکه احود این رفت با مشرکین مکه عهد بست پیمان بست که ما باید مسلمانان را از بین ببریم الان ضربه خوردن ضعیف شدن ناتوان شدن شما با ما همکاری بکنید اونجا با هم دیگه معاهده و پیمان امضا کردن که بر علیه مسلمانان در آینده برنامه ریزی داشته باشند و داشت برنامه ریزی میکرد. رسول الله صلی الله علیه سلم متوجه شدن یک صحابیه قهرمان را که خیلی تندرو هم بود از نظر دوی میدانی میگم تندرو بود خیلی تند میدوید آن حضرت به نام حضرت محمد ابن مسلما رضی الله تعالی عنه آن حضرت ایشون را فرستاد که بره کار کعبه ابن اشرف را تمام بکنه او رفت و خودش را غیر مسلمان جازد و گفت که من شنیدم بر علیه این فردی که ادیا نبوت میکنه شما دارید برنامه ریزی میکنید تو حدیث صحیحه این هست غالباً در حدیث صحیح آمده گفت شنیدم شما دار داری برنامه ریزی میکنید من هم گفتم بیام از نزدیک متلبشم چه کار میکنید او با او داشت صحبت میکرد و تو همون قلعهش داشت نشون میداد که ما چه کارهای داریم میکنیم یک لحظه وقتی که او غافل شد این صحابی حمله کرد و زد او را کشت و از اونجا فرار کرد خیلی تند بود کسی نتونست گیرش بیاره لذا کار کعب ابن اشرف را این صحابی بزرگوار به دستور رسول الله چون رسول الله پیامبر خداست حاکم بود و فرمان را صادر کرد لذا اون از بین رفت وقتی که این یهودی که داشت توطعه می کرد از بین رفت یک عداوتی پیدا شد نسبت به آن حضرت بیشتر شد تا اینکه سال چهارم شد سال چهارم هجری شد سال چهارم هجری یک گروهی از منافقین جای دیگه آمده بودن خدمت رسول الله که شما تعدادی از کسانی که قرآن بلد هستند قاری هستند، حافظ هستند به بی ما بدید به من قرآن نشان بده، یاد بده رسول الله صلی علیه و سلم، هفتاد نفر از حفاظ و قررا و آلمان قرآن رفرستاد اینا رفتا اونها قصد خیانت داشتند همه اینها را شهید کردند یک نفر از اونجا جان سالم بدار برد که غالبا اسمش امر بود این یکی فرار کرد دوید از اونجا آمد در مسیر که یه جایی نزدیک مدینه دو تا کافر را دید و از بس که احساساتی بود حمله کرد این دو تا کافر را هر دو را زد و کشت و بعد بالاخره مشخص شد که این کار اشتباهی بوده دیه لازم شد دیه قانون دیه اون زمان این بود دو تا دیه بر مسلمانان افتاد باید مسلمانان به اون قبیله می دادند با هر کسی که هم پیمان می شدند از اون جا پول بر دیه جمع میکردند آن حضرت صلی الله علیه و سلام رفت پیش همین بنو نظیر که اینها با رسول الله پیمان داشتند رسول الله گفت که شما سهم خودتون را بدید ما با باید این خون را جمع بکنیم اونا گفتن باش با هم مشوره کردن رسول الله کنار دیوار قلعه نشست و نگفتن بهترین فرصت است الان میتونیم از پای در بیاریم از بالای قلعه گفته سنگ بزرگ را پرتاب میکنیم و کارش تمام میشه یک سر میشه. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از طریق وحی متلع شدن خداوند خبر دادن که توتی در کار است. لذا آن حضرت فورم بلند شدن،, شدن. رفتم و صحابه پشت سر رسول الله رفتن. آن حضرت پیغام دادن برای بنو نذیر که ما اطلاع داشت، اطلاع یافتیم از مکر شما، از توتیع شما. لذا شما هم چون غدر کردید، خیانت کردید، پیمان را شکستید بیشتر از این نمیتونید در مدینه بمانید. مدینه را ترک بکنید اینجا هم آن حضرت احساساتی نشد فوراً حمله نکرد ده روز بهشون فرصت داد ده روز فرصت دارید این قلعه و این باغ و این نخل و هرچی برای مسلمانان هم میمانند شما برید برای خودتو اونا گفتن نخیر امکان نداره عبدالله ابن ابی رئیس منافقان پیغام فرستاد که شما استقامت کنید اگر اینها با شما درگیر شدن ما باید کمک شما خلاصه نرفتن در اون موعد مقرر نرفتن آن حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه را برداشتند و رفتند این قلعه ای بنو نذیر را محاصره کرده این در سال 4 بود محاصره کردند تقریبا 25 روز طول کشید محاصره و یهودی ها هرچی منتظر بودند که منافقین بیام به کمکشون کسانی که وعده داده بودند همه را خدای عزوزل چنام مرعوب و وحشت زده کرد هیچ کسی نیامد مقدار درگیری طور که صبح از کردم از پشت درها و از پشت دیوارهای قلعه شد مسلمانان میزدند هم دیوارها را میزدند هم نقلهای خرماشون را میسوزندند هم درهاشون را میزدند آخر این یهود به این نتیجه رسیدن که ما باید بریم خودشون شروع کردن در و دیوار خودشون را غلعی خودشون را خراب میکردن یخربون بیوت هم به بی عیدی هم و عید المؤمنین معنیش امینه. گفت الان که به دست مسلمانان میفته یک مخروبه به دستشون میفته و بعد آخر معاهده بسته شد پیمان بسته شد که هر خانوادهی با یک شطور بار هرچی میتونه بار بزنه غیر از اصله بردار بره بقیه وسائل هرچی میمانه میمانه برای مسلمانان بالاخره یهود تسلیم شد و این غلعه را در سال چه چهارم هجری از دست دادند و سومی غلعه مال بنو قرزه است که در سال پنجم هجری اون را در سوره احضاب میخانیم الله عز وجل همین را در این همین جریان را در این سوره مبارکه بیان فرموده ابتدا آن توحید هست چون بس بحث, بحث جهاد است همه اینها مباحث جهاد هستند اما قبل از جهاد بحث توحید هست که ما بدونیم این سوره هم از مسبهات هست ما بدونیم که موضوع اصلی مسئله توحید است الله می فرماید سبح لله ما في السماوات و ما في الأرض تسبیه گویت برای الله قالا و تمام آم موجوداتی که در آسمانها و زمین هستن و العزيز عزيز الحكيم این اللته چون ان ذات قدرتش کامل غالب کامل هست الحكيم حکمتش کامل حکیم هست هو الذي اخرج كفرو كفروا من ديارهم لاول الحشر الله می فرماید ان الله ذات که بیرون کرد کسانی را که کفر کردن از اهل کتاب کفار اهل کتاب را از دیارشون بیرون کرد لاول الْحَشْرِ برای اولین حشر حشر به معنی چیه حشر به معنی جمع شده الان دو معنی کردند یعنی اولین باری که مسلمانان جمع شدند اونها رو بیرون کردند اما این تجمع اول مسلمانان نبود لذا بعضی گفتن لأول الحشر اولین جمع کردن یهود و بیرون کردن اونها پس حشر اول اینه حشر دوم دو کدوم هست درباره مصداق حشر دوم دو قیل و قال زیاد هست بسیاری میگویند که حشر قیامت هست که همه یهودی‌ها را خدا اونجا جمع میکنه اما قول محقق اینه که حشر دوم دو ارز به خدمت شما اون حشری هست که در خیبر خداوند جمعشون کرد و بیرونش که از خیبر در سال هفتم هجری که شما در سوره فتح خاندید لذا الله بیرون کرد ما ظننتم یا يخرجوا الله به مسلمانان میگه شما فکر نمی کردید گمان نمی کردید که اونها خارج بشن اونها هم فکر نمی کردن ولی خدای یه چیزی را که فیصله میکند نه مسلمان فکرش را میکنند نخود خود یهودی و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله آنها فکر میکردند که همانا مانه انھا قل احایشن من الله یعنی از عذاب خدا مد عذاب الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب الله پیش انھا آمد از انجایک انھا گمان نشو نه داشتند یعنی خداوند از چه طریقی وارد شد از طریق قلبشون شد. در دلشون وحشت انداخت و قذف فی قلوبهم الرعب الله در دل انها به وسیله مسلمانان رعب انداخت وحشت انداخت چنان رعب وحشتی که یخربونا بیوت هم هم خراب می کردند را با خودشان و اید المؤمنین با داستان المؤمنین فاعتبرو یا اول الابصار سبحان الله الله ما دعوت میده ما را دعوت میده که دعوت به تذکر دعوت به درس گرفتن دعوت به عبرت ای عقلمندان ای صاحبان عقل و خرد عبرت بگیرید که قومی که خدا را ناراضی بکنه قومی که در مسیر باطل قدم بر هر کسی باشه دارای هر جایگاهی باشد خدای عزوجل خار و زبونش میکنه کنان خارج می که اون غلعه مستحکمی که اون فکر می کنه مانع من همین قلعه است حفاظ من همین قلعه است مرا همین قلعه نگهداری میکنه و حفاظت میکنه آخر کار به جای میرسد که خودش بادستان خودش اون را خراب میکنه این نمونه ها ما در دنیای فعلی هم زیاد داشتیم مدارب فاعتبر ويا وللابصار اما سوال اینجاست که چرا خدای عزوجل برای اینها قتل و قید نیاورد الله میفرماید من قبلا فیصله کرده بودم جلاوتنی را و الا اینها کشته میشدند و اونجا ذلیل میشدند اسیر میشدند ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا اگر ننوشته بود خداوند بر آنها جلاوة نیرا لعذبهم حتما انها را عذاب میداد در دنیا با قید و قتل عذاب میداد اما در آخرت عذاب هست ولهم فی الاخرته عذاب النار برای آنان در آخرت عذاب آتش است، عذاب جهنم است. چرا؟ علت چیه؟ چرا این بدبخت در دنیا هم جلاوتا شد در آخرت هم میسوزد. سوزد ذالک بی انہم شاق الله و رسوله مخالفت خدا و رسول این سبب این است که اینها مخالفت کردن با الله و رسولش احکام خدا و رسول و من گرچه اہل کتاب بودند گرچه پیغمبر زادها بودند خدا تعالیٰ به نسب نگاه نمی کنه به سواد نگاه نمی کنه خدا عز و جل به چیزی؟ نظر می فرماید الله عزوجل به اینکه واقعاً این در چه مسیری هست و من الله هر کسی مخالف خدا باشد هر کسی باشد پیغمبر زاده باشد مگر فرزند پیغمبر کنعان به عذاب, عذاب گرفتار نشد فانا الله شدید العقاب همانا خدای عزوجل سخت عذاب دهنده است به سختی اونها را عذاب میده خب الان یک اشکالی و یک شبهی بود که این اشکال از سوی مسلمانان هم پیش آمد مسلمانان خودشون هم دوچار شک و تردید بودند و این اعتراض را یهودی ها هم کردند گفتن شما چه دینی دارید که دین شما دستور میده به فساد درخ حالا چرا میسوزونید خانه ها را چرا ویران می کنید و خراب می کنید و در دل مسلمانان هم همین آمد که ما بالاخره حمله که کردیم همه چیز را از بین بردیم آیا این گناه نیست؟ الله می فرمه این به ازن الله بوده نه نیست ما قطعتم من لینتن آنچه که شما قط کردید از نخل خورما او ترکتموها یا اون را باقی گذاشتید بر حال خودش ترکتموها قائمتاً على اصولها که استاده بر ریشه است فبی اذن الله این بی اذن الله بوده خدا این کار را کرده که ولیوخزی الفاسقین تا فاسقین را رسوا بکند فاسق کافر فاسق است منافق فاسق است هر کسی که از دستور خدا خروج کند اون فاسق است بعضی از فسق در حد کفر هستند بعضی در حد غیر کفر و معصیت هستند و بعد خدای عزواجل اینجا در باره اموالی که به دست آمدند در این اموال الله عزواجل توضیح میده و مطلبی را بیان می فرماید اون مطلب اینه ببینید اموالی که در جنگ به دست از دو حال خالی نیستند یا با درگیری و کشتن و کشته شدن و شهادت وقتی که مسلمانان اونجا خون بدن، اونجا جنگ بکنند شمشیر بزنند این اموال اموال غنیمت گفته می شوند اینا اموال غنیمت هستند اموال غنیمت که به دست بیاد حکمشون اینه که چار پنجم یعنی از پنج قسمت چار قسمت مال غانمین هست مال مجاهدین هست و یک پنجم مال بیت المال هست شما انشاءالله در سوره توبه و وعلمو ان ما غنیمتم من شیئن فا انا لله خمسهو رسول للرسول یک پنجم مال خدا و رسول بقیه بین مجاهدین تقسیم بشه اما اگر اونجا مجاهدین نجنگیدن شهید ندادن نکشتند و به اون سور شمشیر نزدند فقط یک هیاهوی کردن خدای تعالی خودش دشمن را مرعوب کرد دشمن ترسید و تحویل داد و رفت این مالی که از این طریق به دست میاد این مال مال فیع گفته میشه مال چیه؟ مال فی هست مال فی را بین مجاهدین تقسیم نمی کند مال فیع در اختیار رسول الله است یا اگر خلی، زمان خلیفه باشه در زمان خلیفت المسلمین و در اختیار خلیفه المسلمین در اختیار اون امیر مسلمانان هست کسی که در رأس مسلمانان است او به مصارفی که بیان شده به بی این مصارف مصرف می کند. دستور میده هر کسی که خواست او خاص به او او مصرف بکند. لذا بین مجاهدین تقسیم نمیشه. بنابرا این اینجا خدای از حکم مال فای را بیان فرموده این خیبر ببخشید قبیله بنو نذیر هم مال فای بود چند دین دیگه مال فای بودند که حکم اینها همین بود نباید در ملک کسی در بیان مثل باغ فدک که یکی از مسائل هست که گاهی عنوان میشه باغ فدک مال فای بود اما رسول الله صلی الله علیه و اسلام موقتاً در اختیار اهل بیت گذاشته بودند بعد از رسول الله ابو بکر صدیخم در اختیار اهل بیت گذاشتند عمر خم در اختیار اهل بیت که یعنی برای خودشون کشاورزی بکنند استفاده بکنند مصرف بکنند اما باغ مال اونها نمیشه مال بیت المال است لذا مال رسول الله شخصی نبود و اگر فرزن شخصی هم بود ابو بکر صدیق برای فاطمت و زهرہ حدیثی خواندند که مفهوم اون حدیث اینه که جماعات انبیاء نه از کسی ارث میبرن و نه ارث بجا می میگذارند رسول الله که مالی نداشت فدک مال بیت المال بود ولی نمی نمیگذارند حضرت فاطمت و زهرہ قانه شد چیزی نگفت لذا درباره مال فای اینجا خداوند دستور داده ما عفى الله على رسوله من اهل القراء آنچه چه که می خدا بر رسولش از اهل قراء یعنی از قلیها فللله وللرسول اینا مال مجاهدین و غانمی فل فللله وللرسول برای خدا و برای رسول الله و القرب برای خشاوندان بخیش آورندن بخشی بدهید و یتاما به یتیمها که جاهی دیگه صدق نمیبرند خیش آورندن. ها و ما فاء الله علی رسولی منهم آنچه که خداوند عزّ و جل بخشیده بر رسولش از این مالها فما اوجفتم عليه من خیلی شما ندواندید بر آن هیچ اسبی را ولا رکاب و هیچ چطوری را اسپی اونجا ندوان شطور ندواندید. فقط شما محاصر کردید، خدا در دل انها قرار داد، ولیکن الله يسلط رسوله على من يشا. اما خداوند عز و جل مسلط می فرماید رسولش رب بدون قتل خو خون بر هر کسی که بخواد. والله على كل شن قدير و خداوند بر هر چیزی قادر هست، معافا الله دوباره خداوند چون حکمش را بیان می‌فرماید اعاده لبعد است اون جمله اول معافا الله تکرار میشه آنچی که خداوند فی فرموده یعنی بخشیده هبه کرده بر رسولش از اهل قراه یعنی مال فی اهل قراه قریه هایی که از طریق فی به دست آمدند قریه بانو قرزه بود، بانو نزیر بود، فدک بود، خیبر بود، عرینه بود، ینبع بود، همه اینها. الله می فرماید، فلله و للرسول برای خیشاوندان، و الیتام یتیم و المساکین مسکین ها، و ابن السبيل و مسافران، که لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تا اینکه ان دست بدست نشود بین اغنیاء شما، دوله یعنی متداول یعنی همه سرمایه ها به دست شما دیگه نباشد این مال فقرا باشد مال مستمندان باشد لذا و ما اعطاكم الرسول فخذوه این اصل فوز بیان شده آنچه که رسول به شما داد اون را بگیرید و ما نهاکم عنه فنتهو اون چیزی که رسول شما را اون باز می‌دارد باز بیاید و تقوا این نسخه عمل است از خدا پروا داشته باشید بترسید ان الله شدید العقاب نسخه تقواس بدون که خدای عزوجل شدیداً ایقاب میده کسانی را که نافرمانی رسول و نافرمانی خدا را بکنند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 ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشوا نفسه فاولائك هم المفلحون در آیات گذشته در ارتباط با جریان قبیله یهودی قبیله بنو نظیر خاندیم و اینکه بنو نظیر خیانت کردند و خدای عزوجل و به تنبیه اون خیانتشون دستور جهاد بر علیه اونها صادر فرمودند و در نتیجه جهاد بنو نظیر جلاوتن شدند از اطراف مدینه رانده شدند و اخراج شدند اما بعد از اینکه بنو بنونزیر را اخراج کردند اموالشون که باقی ماند اموالشان مال فی بود و مال فی مثل مال غنیمت نیست که بین مجاهدان و بین غازیان تقسیم بشه مال فی در اختیار رسول الله است در زمان رسول الله در زمان خلیفه هست در زمان خلفا در زمان امیر هست کسی که در رأس مسلمانان باشد و او اختیاراتی دارد به یکی از این مصارف یا به همه این مصارف مال فی را در بیاورد لذا بازی از مصارف را ما خاندیم فللله وللرسول ولذ القربه والیتامه والمساکین یک نکته ای که باید دیروز ذکر می شد و گفته نشد اینه که وقتی گفته میشه فللله برای خداست بسیاری از علما میفرمایند که نام خدا تبرک نامده خدای از بی نیاز هست. از این که مالی به خدا داده بشه خداوند غنی هست اما بعضی گفتن فلله معنادار هست معنایش اینه که به مصرف اون جاهایی برسه که اون جاها نسبت به خدا دارن مثلا بیت الله، مساجد الله، مال فیرا یک بخشی از اون برای خانه کعبه، برای اصلاح و آبادی و تعمیر و ترقی حرمین شریفین استفاده کنید و لرسول برای رسول الله خود رسول الله صلی علیه و وسلم اهل بیت آن حضرت اینها از جمله مسارف مالفی هستند که میشه مالفه را در اختیار انها داد تا مصرف کنند اما در پایان اون آیه جمله ای هست که این جمله هم قابل تدبر و قابل تعمق است خداوند می و وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فنتهو آنچه که به شما رسول صلی الله عليه وسلم می دهد چه از مال چه از فرمان دستور امر، اون را به جان و دل بگیرید و هرچی که شما را باز می باز بیایید گرچه مصداق این آیه خاص هست ولی ما قبلا خاندیم که هرگاه آیه آیهی سبب خاصی داشته باشد مورد خاصی داشته باشد و یا مصداق خاصی داشته باشد هیچ وقت آیه در اون مصداق حصر نمیشه در اون مصداق بند نمیشه آیه عمومی هست لذا این دستور فقط برای ای نیست یه دستور عمومی هست که خدا تعالی می فرماید هرچی که پیغمبر به شما میده به شما امر میکنه فرما سادن میکنه بگیرید و هرچی که باز می باز بی آید علماء بزرگوار میفرمایند این آیه یکی از دلائل قوی حجیت حدیث هست شما استهزار دارید گروهی اخیران در سالهای اخیر و شاید یک صد سال اخیر و بیشتر از یک سال گروهی هستن که خودشون را اهل قرآن می لقب زیبایی برای خودشون انتخاب کردند. اهل قرآن و شعارو جمله های هم زیبایی می حس کتاب الله میگن کتاب خدا برای ما کافیست. ما بعد از کتاب الله نیاز چیز دیگر نداریم منکر حدیث هستند. احادیث پیامبر صلی الله علیه و وسلم را انکار میکنند و میگویند که احادیث پیامبر ما حجت نیست ما دلیل نیست البته این گروه چندین نظرات دارند یک نظر ثابتی ندارند که بش گفت که یک نظر ثابتی دارم بعضی میگویند که پیامبر به عنوان یک حاکم مسلمان برای زمان خودش برای اون زمان که صحابه بودند برای اون زمان سخنانش حجت بود اما الان که در زمان ما تشریف نداره برای ما حجت نیست بعضی متقیدن نه در همون زمان نه به عنوان حاکم بلکه به عنوان رسول خدا پیامبر خدا صحبتهایش فرمانهایش حجت بود اما چون که ما فاصله گرفتیم و یقین نداریم ازعان نداریم که واقعاً این سخنان همون سخنان است یا در وسط مردم اینها را تحریف کردن مردم اینها را تغییر دادند. با توجه به این شک این سخنانه که به عنوان حدیث به مرسیده لذا قابل عمل و قابل حجت نیستند. وقتی که از این گروه میپرسی که خب پس شما نماز چطور میخانید میمانند. بعضیها میگن نماز خدا مطلق گفته نماز اگر یک رکت بخونی هم نماز میشه لذا قبول میشه. لذا این گروهی هست گروهی گمرایی هست که منکر احادیث ان حضرت صلی الله علیه و سلم است. و ما میدونیم که اصلا امکان نداره بدون سنت، بدون تشریح بدون طبیعین رسول الله و تفسیر رسول الله، کسی قرآن را بفهمد اگر کسانی قرآن را میفهمیدند خدای از کتاب را بهتنائی فرستاد نیازی نبود به پیغمبر که پیغمبر فرستاده بشه۔ خداي عزوجل و جل در واقع دو قرآن برای ما فرستاده‌ی قرآنی که خاند میشه به صورت کتاب هست مکتوب این قرآن که در دست ماست و یک قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم است که قرآن عملي هست کان خلقه القرآن تمام اخلاق، تمام اعمال رسول الله قرآن هست وقتی که قرآن میگه اقیم صلات پیامبر اسلام میفرماید که سلّو کمر ایت مونی نماز را همان گونه بخوانید که من میخانم خب من میخام مثل پیغمبر نماز بخوانم تو قرآن نیست از کجا بگیرم از سنت رسول الله میگیرم وقتی که قرآن میفرماید که اتمل الحج حج انجام بدید حجتون را کامل بکنید رسول الله میفرمايت خذو عنی مناسککم مناسک را از من بگیری ببینید من چطور حج میکنم خب من که در زمان رسول الله نیستم چیکار بکنم باید به احادیث رسول الله مراجعه بکنم و احادیث رسول الله خداوند بهترین رحمت ها بر محدثین نازل بفرماد چنان محدثین تغوار را رعایت کردن، چنان احتیاط را رعایت کردن که در نقل احادیث صحیح از زمان پیامبر به ما هیچ شکی وجود ندارد. کسانی که علم حدیث بلدند، می می‌دونند که حتی صحابی، یه جایی که اشاره‌ای شده، اونجا اشاره کنه یه جایی که آن حضرت دست به سر گذاشته، باچی چه کیفیتی گذاشته، به همین کیفیت به شاگردانش میگه به این صورت دست را گذاشتند. یعنی حتی حرکات و سکنات و کلماتی که مگاهی فکر می کنید لازم نیستن حتی انها را هم برای ما نقل میکنند تا ما باور بکنیم که این حدیث درست به ما رسیده و اگر این تشکیک که این گروه ایجاد می کند اعزو بالله بگیم که معلوم نیست این حدیث همون حدیث هست پس این تشکیک را خیلی ها در باره قرآن هم مطرح می معلوم نیست این قرآن, قرآن این این آیه یکی از حجتهای قوی و استدلالات قوی هست. مبنی بر اینکه سخن رسول الله، فرمان رسول الله برای ما حجت است. وما ما آتاکم الرسول فخذو آنچه که به شما رسول داد بگیرید با چنگ و دندان بگیرید محکم بگیرید بهش عمل کنید و ما نهاکم عنه فنتهو اون چیزی که پیغمبر شما را از اون باز داشت از اون باز بیایید لذا پیغمبر چطور باز میدارد؟ فرمان امروز خود رسول الله صلی علیه و سلم تشریف نداره فرمان رسول الله است دستورات رسول الله بازداشتن و منهیاتی که رسول الله بیان فرمودند پس معلوم میشه که همون طوری که قرآن برای ما یک منبع شرعی هست یک مصدر شرعی هست سنت رسول الله صلی الله علیه و هم یک مصدر شرعی هست مصدر دوم هست که ما تمام دین خودمون را اعمال خودمون را عقائد خودمون را اخلاق خودمون را نوع معاملات خودمون را از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم می گیریم و با حذف سنت رسول الله دین ناقصه لذا الله می فرماید و ما الرسول فخذوه که بشمار رسول صلی الله علیه و سلم داد بگیرید و ما نهاکم عنه فأنته وانتش شما را باز داشت از آن باز بیاید و تقی الله خدا پروا داشته باشه بترسید از خدا این نسخه عمل است دیروز عرض کردم ان الله شدید العقاب این نسخه تقوا است اگر میخواید تقوا در وجودت بیاد بدون که خدا شدید العقاب است سخت عذاب میده خب بعد از این در ادامه الله عز جل مسارف را بیان می فرماید چند تا از مسارف را خواندیم. مسرف دیگر از مسارف مالفه الله می فرماید این مالفه را خرج کنید بر فقراء مهاجرین اون مهاجرین فقیری که از خانه و کاشانه خودشون بیرون کرده شدند اخراج شدند و از اموالشان معلوم میشه که اونها اگر چه اموال داشتن مالی داشتن و مالشون در مکه مکرمه مانده الان که اینجا آمده هجرت کرده اونجا مال داره اون به حسابش نمیاد برای این به حساب نمیاد این مال مال کسی است که الان تصرفش کرده غصبش کرده لذا الله میفرماید للفقراء المهاجرین مالف برای فقراء مهاجرین اسون مهاجرین فقیر الذین من دیارهم انهایی که از دیار از خانه و کاشانه اخراج شدند و اموالهم از اموالشان بخاطر خدا هم خانه را ترکرده هم مال شون را یبتغون فضلا من الله و رضوانا انجا خدای وجل۔ اون ذاتی که از اسرار سینه ها خبر دارد اون ذات برای ما بیان می‌فرماید که اینها چرا حجرت کردند بسیاری از مردمی که با اصحاب و یاران رسول الله مشکل دارند اونها تهمت های ناروا و بیجای می گویند احیانا شنیده میشه میگن اینها اگر بودن به خاطر مال بودن به خاطر غنیمت چون چونکه اینها فقیر بودند چیزی نداشتند در حالی که اینها مال داشتند اخرجو من دیارهم و اموالهم مال داشتند اما مال را از دست دادند به خاطر الله و دین الله و بعض در کنار رسول الله جانانه و مردان جنگی به چی به خاطر مال نبود به خاطر غنیمت نبود به خاطر چی بود از خدا بپرسیم یا بتغون فضل من الله ورضوانه طالب فضل خدا هستند طالب رضای خدا فضل را تفسیر کردم بهشت و رضوان خدا اون رضایتی که خداوند در بهشت اعلام میکند ولی خدا تعالی این جماعت را در بهشت هم اعلام میکند ان شاء الله که از اینها راضی است در این دنیا هم اعلام کرده اینها به هدف رسیدن این جماعت خدا در همین دنیا هم اعلام فرموده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهمی چه اعلامه رضایت شده پس اینها طالب چی هستند طالب فضل خدا و طالب رضای خدا که به رضای خدا هم رسیدند به بهشت خدا هم رسیدند رسول الله صلی الله علیه و سلم بتک تکشون فاز ارزم به بهشت داد از شریه مبشره که مشخصه به صحابه در معرکه های مختلف همین مهاجرین نبودند در حدیبیه وانسار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة خداك راضيات خدا ببهشت شمي برد بس هدفي كون هدف كونها داشتاً هدف حاصل شد هدف شون بود رضا مولا بود فضلا من الله ورضوانا مي فضل راز جانبي الله ورزا خدا رمي وينصرون الله ورسولا این فضیلت دوم مهاجرین ناصر دین خدا و ناصر رسول الله یار و یاور خدا و یعنی دین خدا و یار یاور رسول الله در کنار رسول الله ایشون را یاری کردند مهاجرین این طور بودند و خدا تعالی فضیلت سوم را بیان می اولائک هم الصادقون انها را خداون می فرمد انها هستند قبلا هم گفتیم مصداق اول صادقین صحابه رسول الله هستند هر کسی میخواد که صادقین را ببیند صحابه رسول الله را ببیند و بعد از اون در زمان ما کسانی که بر روش صحابه هستند بر منهج صحابه هستند بر مسیر صحابه هستند اونا صادقین هستند اولائی که هم الصادقون بقوله قاضی صنع اللہ ما قاضی سناولا پانی پانیپاتی در تفسیر مزاری می‌فرماید که اینها در چی چیزی صادق هستند، اولایک الصادقون فی ادعاای ایمانیم. بسیاری از انسان‌هایی بی انصاف و بی ایمان، چون که صحابه را به خود قیاس می‌کنند. آیاتی که در رابطه با منافقین آمده. این آیات را برای اصحاب و یاران رسول الله می که نا در کنار رسول الله بود علیاذ در حالی که خدا اینها را میگه اولئک هم صادقون لذا پس اینها در ادعای ایمان صادقند در ادعای ایمان راست هستند لذا ایشون میفرماید فمن قال من الروافض کسانی که از دشمنان صحابه و روافض میگویند که انهم کانو منافقین به صحابه میگن منافقین و كانوا کاذبین میگن در ادعای ایمان کاذب بودند میفرمایید که این آیه باید انکار بکنند انهار لازمیت کے بعد منکر این آیه باشند نسبت به این آیه پشت بدهند چون این آیه اونها را صادقین گفته اونها را راست گفته در ادعای ایمانشون مثل منافقین دروغ نمیگوین خب این گروه اولی هست که مصرف جز مصارف است گروه دوم دو والذین تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم سبحان الله کسانی که تبوؤ الدار جای اختیار کردن در دار دار یعنی دار الهجره مدینه قبلا اسمش یثرب بود اما بعد از که رسول الله صلی الله عليه وسلم اونجا تشریف پردن دو نام دو نام جدید براش اضافه شد بعد از این یثرب کسی نمی گفت و نه درست درست هم نیست میگوید یک مدینه النبی به خاطر بهش میگن مدینه شهر رسول الله دیگه شهر رسول الله شد و دو دارالحجرت جای داری که اونجا رسول الله و دوستانش یارانش هجرت کردند. لذا خداوند می کسانی که تبو و الدار، یعنی در اون الهجرت جای گرفتند. اقامت گزیدند سکنا گزیدند منظور انصار هستند. ایمان و هم در اون دارالحجرت ایمان را حاصل کردند قبلا اصطلاحی برای شما عرض کرده بودم و توضیح دادم الفتها تبنا و ماء باردن که دو تا اسم هستند یک فعل آمده بظاهره اما هر دو نمیتونه متعلق یک فعل باشن یک فعل دیگه مقدر است اللفته تبنا وسقيتها ماء ان باردا ان مذهمون قبيلث والذين تبوا الدار وحصلوا الايمانه يا اخلصوا الايمانه كسان يكي در دار الهجره جاي گرفتند و در ایمان خودشون مخلص بودند يا ایمان را بدست دست آوردند ایمان را حاصل کردند اینا کیا هستند انصار هستند اما قبل انکه مهاجرین بیاین من قبلهم قبلن قبل قدومهم، قبل از تشریف اولی محاجرین انها در مدینه جاید داشتند ببینی خدای عزوجل و برای انصار مدینه اینجا چند فضیلت بیان فرموده فضیلت اول که انها باشندگان دار الهجره هستند مقیمان دار الهجره هستند دو یحبون من هاجر إليهم دوست دارند کسانی را که هجرت می به سوی آنها یعنی با مهاجرین یک ارتباط قلبی دارند وقتی که ایمان در دل باشه این محبت هست خیلی از مردم هستند که ایمانشون ضعیفه وقتی که گروهی مهاجرت می کنم به شهرشون میرون ناراحت میشن میگن اینا آمدن اینجا شلوغ شده اینا آمدن کارگیر نمیاد اینا امدا صفاي نانوایی شلوغه اینا امدا فلان مشکله ولی انصار نه، اونهاي که مهمان واقی و مخلص بودند، یحبوط نمی‌نهاجره ایلهم، اونهاي که هجرت می‌کنم بیش اونها، اونها را دوس می‌دارند، یہ محبت و تعلق قلبی با اونها دارند، و فزیلت سوم ولا یجدونا في صدورهم حاجت ممّا و در دل خودشان این سمره محبت هست. البته در دل خودشان نمیابند یابند. حاجت می‌ماوتو از آنچه که آنها داده شدند هیچ نیازی. یعنی اگر چیزی می‌رسید، غنیمتی می‌رسید، به مهاجرین می‌رسید، اینا اصلا احساس نیاز نمی‌کردند که چرا به ما نرسید. خوشحال می‌شدند. خوشحال می‌شدند که به آنها داده شد. چنانچه در جریان بنو نذیر رسول الله صلی الله علیه وسلم به مهاجرین دادن و انصار ندادند بسیار از غنایم انصاری ها حتی اخم برچهره نیاوردند خوشحال شادان در معرکه حنین میخانیم که بعضی از جوانهایشون این چیزهایی گفتند آن حضرت ولی وقتی یک خطبه خاند که ای دوست ندارید که بقیه مردم از با مال بگرد برگردن شما به شهرتون با رسول خدا برگردید گفتن یا رسول الله ما فقط شما را و رضایت شما را میخواییم و رسول الله تشویقم فرمودن که اگر بقیه مردم از یک شعب و یک وادی برند من از اون شعب و وادی میرم که انصار میرند این قدران حضرت صلی اللہ علیہ اینها را دوست داشت و عیسی را از خود گذشتگیشون را دوست داشت لذا ببین قرآن چی میفرماید ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا در دل‌هایشان هیچ نیازی از آنچه که مهاجرین داده میشوند اینا احساس نمی‌کنند که چرا به آنها دادم به ما ندادند و فضیلت چارومشان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا ترجیح می دهند دیگران را بر خودشان یا مهاجرین را ترجیح می دهن بر خودشان ولو کان به هم خصاصا گرچه خودشان نسبت به اون چیز نیاز داشته باشند احتیاج داشته باشند اینها وقتی که مهاجرین آمدن چیکار کردن بنده ارس کردن مردم دیگر دنیا را نه اینکه کفار را بگم ما مسلمانان را ببینید وقتی که گروهی ہی هجرت میکونن به سوی ما آیا همین برخورد را داریم یا عکس این اینها آمد همه چیزشون را تقسیم کردند سرمایه تقسیم باغ تقسیم مال تقسیم حتی دو نفری کار میکردند یکی کار میکرد یکی بالاخره میفروخت همه چیز را تقسیم کردند حتی تا این اندازه راضی شدند که مهاجرین مجرد آمده، آماده هستیم که یکی از همسران خودمون را طلاق میدیم تا مهاجر برادر مهاجر عقد کند این ایسار این خود از خود گذشتگی در کجا دنیا در کدوم تاریخ میتونی پیدا کنید این ایسار هست و یکی دیگر از های ایسار این بود که نه تنها مهاجرین را هر مسلمانی را بر خود ترجیح دادن در روایت ها ما داستان های مختلفی از ایثار صحابه و یاران رسول الله بالخصوص از ایثار انصار می ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ وقتی که مهمان میاد و بعضی میگن که مهمان رسول اللہ بود و رسول اللہ گفت برای من مهمانی آمده کی می برد مهمان رخانه خودش اینجا وقتی که از همسرش می میگه می هست در حد بچه خوراک بچه ها می را بچه را لالائی کنید بخابونید که مهمان آمده مهمان مقدم است چراغ را خاموش می کند که مهمان احساس نکند ابو تلح خورد و طوری رفتار میکنه طوری دستش را تکان میده و طوری که مهمان احساس میکنه اینم داره با من میخوره مهمان سیر میشه خودش همسرش بچاش گرسنه نمیخوابند این برای چی بود این بغیر از اینکه محبت بود به خاطر الله دیگه دلیلی نمیتونه داشته باشه لذا الله می فرماید و یؤثرون علا انفسهم بعضی میگم بعد از همین جل یعنی این آیه نازل شد و على علا انفسهم ولو كان بهم خصاصا برخود ترجیح می دهند گرچه خودشان نسبت به اون چیز احتیاج داشت باشند وَمَنْ قشح شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ المفلحون الْمُفْلِحُونَ اینجا علت را خدا بیامی فرمد اما علت علت ذرین و ارزشمندی هست خوشا به حال کسی که این وصف را میتونی در وجودش پیدا کند ببینید مقدمتا ارز کنم خدای عزوجل انسان را که پیدا فرموده در انسان های مختلفی گذاشته خصال و صفات مختلفی گذاشته یکی از اون خصال و صفاتی که در درون تک تک ما هست بخله بخل هست و حرص هست چیزی داریم دوست داریم که بی کسی دیگه ندیم فطرتاً طبعاً اما بعضی هستن که ایمان اونها رو تربیت میکنه. قرآن اونها رو می سازه اصلاح میکنه رسول الله اونها رو تزکیه میکنه فت... تربیت میکنه لذا الله عزوجل و اینجا دلیل را بیان می که به چه دلیل به چه دلیل اینها گونه ایسار دارن از خود گزشتگی دارن به دلیل اینکه حرص از وجودشون خارج شده بخل از وجودشون خارج شده به این دلیل اینها برای خودشون فکر نمی بعضی انسان ها واقعا خدای عزوجل این اخلاق را به برکت عبادت بهشون داده به برکت قرب با خدا بهشون داده به برکت رابطه با خدا بهشون داده که دوست دارند رفیق من همسفر من دوست من اون سیر بشه من گرسنه باشم اشکال نداره دوست داره چیز بهتر مالی اون باشه مالی من نباشه اما این خلاف اون فطرتی است که در وجود من شما نحاده شده لذا الله می‌فرماد و من یوق شوح نفسی. هر اون انسانی که حفاظت بشه از بخل نفسش شوح هم بیانه بخل میاد، هم بیانه حرص میاد. فاولاء هم المفلحون. این گروه گروهای رستگاری هستن. این افراد این افراد رستگار و موفقی هستن. ببینید خدای از زوجال دو گروه را از افرادی که در کنار رسول الله به عنوان حامی پیامبر خدا بودند ذکر فرمود اول مهاجرین را بعدن انصار را و اینها را فرمود نه مستحقین فی هستن گروه دوم دو کسانی که بعد از انها میاند کسانی که بعد از اونها. اما ببینید این کسانی که بعد از انها مثلا تابعین انسان های بعدی تا زمان ما شامل ماها هم میشه در چه صورتی ما مشمول این آیه هستیم مصداق این آیه هستیم زمانی که این اوصاف در, در میان ما باشد الله می فرماید والذین جاؤوا من بعدهم کسانی که بعد از اونها میان تابعین تبع تابعین بعد از اونها انسانای قرون بعدی تا قیام قیامت یقولون رب نغفر لنا بعد از مهاجرین و انصار میان میان چکار میکنن نسبت به اونها اولا دعا خیر میکنن دعا مغفرت میکنن بار ما مارا ببخش ولی اخواننا الذین سبقونا ایمان برادران مارا اون برادرانی که در ایمان و در وادی ایمان از ما پیشی گرفتند انهایی که قبل از ما بودن سلف ما ما خلفشون هستیم اونا سلف ما هستند سلف ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتن یعنی در زمانه های گذشته بودن در قرون گذشته بودن خدای اونها را هم ببخش این در واقع آموزش الهی و آموزش قرآنی است که به من و شما میده که ما نسبت به سلف چیکار باید بکنیم ببینید بعضی از مسلمان ها متاسفانه به راه انحراف رفتند به قول مفسرین که روی این آیه میفرماید دوتا علامت دارند یکی قلت تعدب دوم قلت تعبد یعنی ادبشون کمه و توفیق عبادتشون هم کمه قله تعدب و قله تعبد در این آیه خدای عزوجل به ادب ما را چی میکنه به ادب ما را تشویق میکنه یعنی کسانی که بعد از اون گروه می آیند و در حق اونها دعای مغفرت میکنن فقط برای خودشان دعا نمی کنن. و این هم کافی نیست ببین در ادامه دعا خدایا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا قرار نده در دل ما حق دی ای نسبت به کسانی که قبل از ما ایمان آوردن خدا یا نسبت به انها ہیش نو در دل ما نباشد پس مومن واقعین که نسبت به گذشتگان کینه به دل داشته نباشد نسبت به سلف به علماء گزشته فقهائی گزشته ائمه مجتهدین و بویش صحابه رسول الله صلی الله عليه وسلم انهایی که نه از جان خودشون دریغ کردند نه از مال خودشون دریغ کردند از رسول خدا جانانه حمایت کردند الان ما بیایم به طرف اونها لعن و نفرین بفرستیم الا یاز بالله قرآن میگه که وقتی که میآیند آیند اینا هم برای اونها دعای مغفرت میکنند و میگویند پروردگارا در دل ما نسبت به اونها هیچ غلغشی نباشد هیچ حقدی نباشد، هیچ کینهی نباشد، هیچ بغضی نباشد هر کسی این دعا را میشه بکند، دلش پاک میشه خدا دلش را پاک میکنه، صاف میکنه. و این دعا را خدا در قرآن ببند تو آموزش داده که نسبت به گذاشته‌گان ما کسانی که قبل از ما ایمان آوردند در بهترین زمانها بودن بودند، بل خصوص در قیارالقرن بودند، بل خصوص اونهاي که با ایمان جمال جهان آراي رسول الله را تماشا کردند، مشاهده کردند، از خدا میشه بخوایم که خدایا نسبت به اونها در دل ما کینه نباشد، بلکه محبت باشد، عشق باشد نسبت به اونها. ربنا ان نکراو ف پروردگارا همانا تو همان هستی رقفتت بیشمار است و مهربان هستی مهربانی و می و و لطف می کنی ابدوعهای ما را اجابت میکنی خب بعد از این خدای از زوجال سرزنش می بعد از این که مصارف زکات مصارف مالفه بیان شد و ما آلوسی اینجا یکی دوتا نکته هم از آلوسی هست هم از ابن کثیر هست خدمت شما بگم آلوسی می فرماید که وفیل آیت حثن على دعائی لصحابه در این آیه خدا ما مارا تشویق کرده که برای صحابه دعا کنیم و تصفیت القلوب من بغض احد من هم دلهای دل من را پاک کنیم که مبادا نسبت به یکی از اونها دلهای ما بغض بگیرد من قبلا هم عرض کردم الان هم تأکید می کنم تکرار می کنم. هر مسلمان می خواهد که یک عقیده و یک باوری داشته باشد باور و عقیده خودش را از قرآن کتاب خدا بگیرد نه از تاریخ که تاریخ کتاب انسان هاست تاریخ را یک تاریخ نویسی یک ملای یک آخندی مثل من نوشته اون دلش پر از بغض و حب و بغض بوده اون دلش پر از تمع بوده در زمان خلفا خلفای عباسی خلفای عمو، عموی فاطمیون تاریخ را نوشتن هی hey, این گروه را می که نسبت به اون گروه این, این خوشش میاد اون تعریف کرده اگر بدش میاد اون را کرده اون را بد گفته لذا تاریخ نویس ها بر اساس تمایل خلفا تاریخ را تنظیم می‌کردند. هیچ وقت تاریخ برای من و شما حجت نمیتونه باشه کتاب خدا برای ما حجت است ببینید کتاب خدا در مورد این جماعت و این گروه چطور چی میفرماید لذا این باید برای ما ملاک باشد الم ترى الى الذين ها این عرض کردم که قرآن آیه ما را تشویق کرده که برای صحابه دعا کنیم و تصفیه القلوب من بغزه احد منه که بغض هیچی که در دل نباشد دل های پاک باشد و نه اینکه بغض نباشد باشه حب باشد عشق باشه و هم چنین علامه ابن کثیر می فرماید امام مالک از این آیه استنباط کرده فقها همیشه استنباط می کنند می گویند کسانی که صحابہ را سب و شتم می, می کنند کسانی که یاران رسول الله را بد و بیراه می گویند لعن و نفرین می کنند جز این آیه شامل نمیشین یعنی اونها مستحق مالفه در هیچ زمانی نیستند معلوم میشه که این مالفه برای مردمان اون زمان و مردمان زمانهای بعدی هم هست. جو همون زمین میمانه همون باغ میمانه همون مال میمانه لذا به افراد بعدی اگر شما میخواهید بدهید سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنو وقتی که عراق رفت کرد اون وقت عراق بخشی از ایران بود بعد از جنگ قادسیه بسیاری از صحابه گفتن که این زمین ها را بین ما تقسیم بکنید خب بخش زیادی از زمین ها بودند عمر فاروق رضی الله تعالی آنها گفت که من اگر بین شما تقسیم بکنم برای نسلهای های آینده اون وقت چه فکری بکنم خلافا خیلی دور فکر میکردن دورندیش بودن گفته اگر اینها رو من بین شما تقسیم بکنم این زمینها میشه مال شما نسل های آینده وقتی که می اونایی که اولاد شما باشن به نوای میرسن ولی غیر از اونها چیکار کار بکنند لذا این, تق این زمین زمینها مال بیت المال هست برای نسل های آینده میذارم که هر مسلمانی که آمد بتونه از اینها استفاده بکنه بس معلوم میشه که مصارف مالفه مربوط به مسلمانانی که در اون زمان فتح کردن نیست بلکه زمانهای بعدی اینجاست که امام مالک میفرمید در زمانهای بعدی کسانی که غیر از این اعتقاد و باوری که در این آیه هست دارند اونها را مالفه نمی دهیم اونها مشمولین آیه قرار نمی گیرن ارز کردم که یهودی ها وقتی که در قلعه بنو نزیر محاصره شدند عبدالله ابن ابی و بعضی دیگر از منافقان وعده کردند گفتند که شما مبارزه کنید شما استقامت کنید ما به کمک شما میاییم ما بیاری شما میشتابیم آنها چند روزی دوام آوردند دیدن خبری نشد این منافق بلوف میزنه، شعار میده، میترسه، تو دلش خیلی میترسه خدا هم میفرماید اونقدر که از شما مسلمانان هم می ترسند، از خدا هم نمیترسند لذا الله عز و اینجا زجر بر منافقین عتاب و سرزنش برای منافقین بیان میفرمد که اینها به اون برادران یهودی خودشون گفتند که اگر شما را اخراج کرد ما هم می اخراج میشیم اگر شما با شما جنگیدن ما هم میجنگیم ولی چرا نکردند؟ چرا خلف واده کردن؟ منافق ترسوه منافق هم ترسوه هم تعهد نداره زده الله می اللم تَرَ إلى الَّذِينَ نَافَقُوا نفقو آیا دیدی انهایی نافقوا نفق نفاق را گرفتند یا قولونه ل گویم ب برادرا یعنی سبن و نظیر گویم ب برادرانشان سب من اهل الكتاب از اهل کتاب اگر شما اخراج شدید بیرون. کرده شدید ما هم حتما با شما اخراج می خارج میشیم و لا نطيع فیکم احداً ابدا و ما در ارتباط با شما اطاعت نمی کنیم از هیچ احدی هرگز و این قوتلتم اگر شما با شما جنگ صورت بگیره جنگی اتفاق بیفته لننصرن نکم حتما حتماً ما یاری میکنیم شما را هنوز به اون مرحله نرسیده بودند خدای عزوجل پیشاپیش پیشگویی فرمودند و پیشبینی فرمودند خداوند چه فرمود؟ والله يشهد انهم لكاذبون الله گواهی میدهد که این منافقین در این ادعایشان دروغ میگویند در این وعدهی که به یهود کردن دروغ میگویند هیچ وقت اینها ها بکمکیون یهودی ها نمیروند تفصیل دروغشون چیه لا ان اخرجوا لا معهم اگر اون اهل کتاب اون یهود اخراج بشوند لا يخرجون این منافقین هرگز با اونها خارج نمی شوند این معجزه اسلام هست که در باره آینده پیشگویی میکند این پیشگوی محقق میشه این از دلائل نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم است لئین اخرجو لا يخرجون معهم اگر آنان اخراج بشوند اینها خارج نمیشون با آنان ولئین قتلو اگر با آنها جنگ بشه لا ينصرونهم این منافقین انها را یاری نمی کنند ولئین نصروهم اگر بالفرض والمحال یاریشون بکنند لیولن الادبار حتما حتما پشت می دهند، پشت می پا به فرار می گذارند، اینا ترسوان، اینا بزدلند. ثم ملائیون سرون، سپاسیاری نمیشوند نمی شوند، یعنی کسی نیست که ناره حمایت کنه، خدا این هر کمک نمی کنه، کسی دیگه هم نیست که کمکشون بکنند، لَأَنْتُمْ أَشَدُ وَرَحْبَةً اِنْ علت است. چرا اینها یاریشون نمیکنند. چرا پا بفرار می گزارند چرا پشت می دهند خداون چون از شما می ترسند. از شما مسلمانان از شما مجاهدان از شما یاران رسول الله اینها و چنان رعبی و وحشتی از شما بدل دارند که از خدا نمی ترسند ولی از شما می ترسند لَأَنْتُمْ عَشَدُّ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ البته شما سختتر استی از نظر رعب و خوف در دلهایشون از خدا یعنی چی؟ یعنی اونها ظاهرا میگم ما از خدا میترسیم ولی از خدا نمیترسند از شما سخت میترسند علت چیه که از خدا نمیترسند از صحابه میترسند ذالک بینن قوم اللہ افقون علتینه این به سبب این اینا قوم نفهم هستند لا یفقهون به دلیل کفر و شرک و ترک ایمان واقیت هارا حقایق را نمی فهمند نسبت به خدا شناخت و معرفت ندارند به این خاطر از بندگان خدا می ترسند از خود خدا نمی و بعد الله تعالی پیشگوی دوم را می فرماید اون یهود اون یهودی که در قلعهاشون هستند اون یهود هم هیچ وقت قدرت جنگیدن با شما را ندارند ارزه روبروی شدن با شما را ندارند از پشت دیوار امکان داری که چیزی شلیک بکنند تیر بندازند اما روبرو یهود را خدای از دارند جنان ترسو قرار داده قبلا شما خان دید که اینقدر حریص هستم بر عمر و بر زندگی نمیخوام بمیرند یود احدهم لو يعمروا الف سنه یعنی کی دوست داره هزار سال زندگی بکنه به همین خاطر اسرائیل امروز که یهودی هستند اینها در جنگ های تسلیحاتی خیلی بالادستند از دور شلیک میکنم موشک بمباران اما در جنگ های روبرو کلند اطراف دولت خودش حصار کشیده دیواره از کنم بسیار بلندی که پر از خا... سیم خاردار از گذاشته که حتی ای نتواند اون طرف رد بشه هر رختی که تجربه گذشته و تاریخ گذشته مسلمانان نشان میده. هر وقتی که جنگ و درگیری شده و افرادی از ارتش اسرائیل و یهودی ها کشته شدن فوراً راه مذاکر و راه صلح را پیش گرفتن نمی تونن به جنگند ولی بی خود مسلمانان از اینها ها می متاسفانه مسلمان هم و مسلمان دیروزی نیست لذا الله عز وجل می فرمد لا يقاتلونكم جميعا انها همگی با شما نمی جنگند الا في قرى محصنه مگر در قریه هایی که اونجا حسین باشند یعنی قلعه باشند قلعه های مستحکم که اون اون قریه قلعه داشته باشد و اینا تو قلعه باشند او من ورای جدور از پشت دی دی دیوارها یکی دیگر از دلایل اینه که خدا میفرمه اختلاف بین خودشون هم زیاده. بأسهم بینهم شدید جنگ بینشون و اختلاف بینشون شدید هست. شما به وقتی نگاه میکنی چطوری یک پارچه هستن تحسبهم جميعا شما اونها را متحد میپنداری و قلوبهم شتا در حالی که درهایشون متفرق است. ذالک بانهم قوم لا يعقلون التي انهم بدلیل اینکه تعقل ندار عقل ندارن. عقل ندار چرا چون دین ندارم دین صحیح ببین اهل دین اهل تعقل هستند کسی که بیدین باشد عقل ندارد کمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم اینجا خدای عزوجل دو تا مثال به اممی یک مثال مثال یهودی ها هست و یک مثال مثال منافقین است اینجا بحث دو گروه را خواندیم قبل از یهودی های بنو نذیر جریان بنو نذیر در سال چهارم بود دو سال پیش در سال دوم در ایامی که جنگ بدر شد بعد از جنگ بدر خدمت شما عرض کردم که یهود بنو قینقا را پیغمبر مهلت داد که زودتر اینجا را ترک بکنید آخر ترسیدن ترک کردن مدینه را و خانه و کاشانه خودشون را گذاشتن لذا این یهودی های نذیر را هم خدا به اونها تشبیح میده همونطور که اونها ترسیدن و جمع کردند و رفتند اینا هم همونطور خواهد بود چنانچه همین شد این پیشگویی محقق شد و یهود نذیر بعد از مدتی که در محاصره بودند آخر گفتن باشه ما میریم به ما اجازه بدید. اجازه دادند هر یکی یک بار شطر با خودش ببره از چی که تونس روی شطر بار بکنه بیشتر از اون اجازه نداشت اصلی هم اجازه نداشت با خودش ببره لذا اللہ می فرمائی ای کم مثل اللذین مثال اینها وصف اینها صفات اینها مثل صفات کسانی است که من قبلهم، قبل از بودند بودن یعنی یهود بنو قینقا قریبا قبل از اینها بودن همین قریب زودی زمان نزدیک ذاق و بالا امرهم در دنیا چشیدن و بال اونرا را و بال و جزای اون کاری که کی کردن کیفری اون کاری که کردن چشیدن نسبت به مسلمان هم خیانت کردند ارز کردم اونا یکی از زنهای مسلمان که فروشنده بود حمله کردند دو تا اینکه که قتل به صورت گرفت ولهم عذاب عذابون برای اونها این در دنیا است که زلیل و خار شدن در آخرت برایشون عذاب دردناک است که مثل شیطان باز خدای از و مثال دیگه بیان میفرم مثال منافقین را بیان می فرمید. مثال منافقین مثل شیطان است شیطان همیشه به انسان میگه این کار بکن اون کار بکن من در کنارت هستم اما وقتی که انسان راه بد را میگیره و مؤاخذه میشه از طرف خدا شیطان فرار میکنه شیطان فرار میکنه لذا مثال این منافقین با یهودیان بنی نذیر مثل این است صفات اینها مثل اون است که عین وقت اینکه به دردشون بخورند وقت درگیری منافقین عقب نشینی کردن گفتم من نمیتونم كمثل الشيطان، أي مثلهم كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان كفر، زماني كي بإنسان قفت، أي إنسان كفر كن، فلما كفر، يعني شيطان هميش إنسان رتا مرز كفر مي برد، فلما كفر وقت كي كفر مي كناد، قال اني بريء منك انسان کفر میکنه شرک میکنه اون معبودی که شیطان میگه او را عبادت میکنه اون وقت شیطان به وقت عذاب و گرفتاری انسان میگه اني بريء منك من از تو بیزار هستم اني اخاف الله رب العالمين من از خدا میترسم که رب عالمین است من با تو نیستم ولی نه شیطانم تو آتش میسوزه اون کاسی کس كس شیطان تبعیت کردم تو آتش می سوزد عاقبتهما انهما في النار الله می فرماید عاقبت وانجام هر دو شیطان و کافر تابو و في النار اینکه هر دو در آتش خواهند بود خالدين فيها هميشة در آتش ماندگار بود وذلك جزاء وإن هاس جزاء اعمال و پاداش ظالمان بعد از این که جریان بنو نظیر تمام شد و در این جریان خواندیم که منافقین منافقین فریب دادند که شما نروید و ما در کنار شما هستیم و آخر چطور غدر کردند خیانت کردند به عهد خودشون عمل نکردند بعد از این ما می زجر برای منافقین اتاب و سرزنش برای منافقین که شما چرا از خدا نمی ترسید چرا برای فردایتون فکر نمی کنید اینجا خدای از وجل خطاب می کنه مومنین را اهل ایمان را چین منافقین به ظاهر مومن بودند خدای تعالی می از فردا برای فردایت آمادگی کن من قبلا خدمت شما عرض کردم که هر جا که خدای تعالی دستور به تقوی می دهد اکثر که دستور به تقوی می دهد نسخه برای تقوی هم بیان می اما بیشتر این نسخه ذکر آخرت است ذکر آخرت است یعنی اگر می خواهید تقوی بیاد به بی آخرت بیاندیشید دیشید بی به قبر بیاندیشید دیشید بی به حشر بیاندیشید دیشید برای حساب و کتاب پاسخ و پرسشی که پیش خدا میشه به بی او بیاندیشید و فکر کنید وقتی انسان به اون فکر بکنه این فکر انسان را وادار میکنه برای آمادگی آمادگی که بکنه دیگه عبادت میکنه ترک گناه میکنه تقوا یعنی همین الله میفرماید یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید اتقوا الله اس خدا بترسید و تنظر نفس ما قدمت لغد این نسخش است و تنظر و ببیند هر نفسی ما قدمت لغد آنچه که برای فردا آماده کرده و الله و از خدا بترسید ببین تکرار است بعضی می که تکرار برای تاکید است برای تاکید است کسی واقعا میخواهد که اهمیت تقوا جلوی مردم بیان کنه میگه مردم از خدا بترسید از خدا بترسید از خدا بترسید چند بار تکرار میکنه که واقعا قلب این جمره را بپذیرد و بترسد پس بعضی میگن اتقوا فرمود دوباره اتقوا فرمود این برای چی هست تکرار هست برای تاکید مسئله که این مسئله خیلی مهم است اما بعضی میگن نه دونو تقوا داریم یکی اینکه از خدا بترس در امر طاعات یعنی عبادت کن نماز بخوان، روزه بگیر زکات بده بقیه اعمال را انجام بده دوم از خدا بی ترس در ترک گناهان ترک سیعات ترک سیعات پس از خدا بی ترس نماز بخوان، از خدا بی ترس بی نمازی نکن مثل بی نمازی که از است از خدا بی شراب نخور از خدا بی ترس و فلان گناه را نکن لذا پس دونو ترس داری اتقاللہ اول زیرش بینیسی فتاعات دلیلش هم چیه ببین بعد از اون آمده ولتنظر نفس ما قدمت لغت هر نفسی ببیند برای فردا چی آمده کرده هر کسی نفس خودش را خطاب کند که ای نفس برای فردا در محظر الله چی داری چند سال تحت جد خاندی چقدر روزه نفلی گرفتی چقدر رای خدا صدق دادی چند بار حج رفتی عمر رفتی لذا اگر کمبود داری والتنظر نفس ما قدمت لغت برای فردا ببین چه چیزی تقدیم کرده پس این کمبود را جبران کن اتقاللہ پس اتقاللہ اول در طاعت و نسخه عملش هم اینوالتنظر نفس ما قدمت لغت. اما وقت کل لبار دوم از خدا بترس، گناه نکن. این دومی چیه؟ از خدا بترس، فی ترک سیارات، گناه نکن. چرا؟ نسخه این رحم بیان فرموده. ان الله خبیرم به ما تاملون، ایلا تش خدا خبر داره. به آنچه که شما عمل میکنید اگر چشم چرانی میکنی خدا خبر داره اگر موسیقی و آلات لهو و طرف گوش میکنی خدا خبر داره اگر غیبت و بهتان و دروغ میگی خدا خبر داره ان الله خبیر پس این در چی در ترک سیئات است پس دو مورد دو تا الله لازم است این دو تا تفسیر شد و خدای عزوجل اینجا سرزنش بیان میفرما برای کسی که در غفلت است در خدا فراموشی هست هم خودش را فراموش کرده و هم خدا را فراموش کرده که خدا فردا با من چه می کند وَلَا تَكُونُو كَالَّذ۪ينَ نَسُوا الله. نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردند خدا را فراموش کرده یعنی چی؟ یعنی خدا را ترک کردند راه خدا را عبادت خدا را فرمان خدا را ترک کردند فانساهم، أَنفُسَهُم فانصاهم یعنی اونها را فراموش داد از خودشون وقتی خدا را فراموش کردی خودت را در واقع فراموش کردی چون فراموشی خدا به معنای خودت فراموشی خدا به معنای خودت پس در واقع خودت را فراموش کردی اولائک هم الفاسقون این گروه گروهی فاسق هستند اینا گروهی هستند که از فرمان خدا ادول کردن تعدی کردن خروج ان خب یک گروه پس فراموش کرد یک گروه فراموش نکرد اینا برابرن نخیر چون هر یکی به یک جایی میره لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنه ان قلت اتقوا ولا تكونوا است اتقوا الله ولا تكونوا كالذین نسوا چونکه اگر اتقو الله باشد اصحاب الجنه هست اگر ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله باشد هم اصحاب الجنه هست نباش بس لئون اگر باشد و اگر از خدا نترسد وقت اصحاب النار هست لا يستوی اصحاب الجنه و اصحاب النار و اصحاب الجنه برابر نیست اصحاب النار الذين نسل الله زیرش می نیست انهایی که خدا را فراموش کردن و اصحاب الجنة الذين اتقوا الله انهایی که از خدا می ترسن با هم برابر نیستن اصحاب الجنة هم الفائزون انهایی که بهشتی هستن اونا رستگارند کامیابند و بعد از این خدای عز و جل برای عظمت قرآن بیان می واقعا این مطالب زیبا این مطالب ناغذ، این موعظه های تکان دهنده، را کی برایت بیان میکنه؟ قرآن بیان میکنه پس این قرآن واقعا عظمت داره این قرآن را قدر بدان این قرآن را با دل و جان بپذیر در وجود جای بده این این قرآن عظمت دارد که لو انزلنا هذا قرآن اگر ما نازل می کردیم این قرآن را علا جبل بر کوهی لرایتو متصدعا می, می دیدی اونکو را فرو تنی کرده اونکو با وجود این صلابت با وجود اینکه اونقدر سخت است که آهنو را نمیشکند اما می دیدی که اونکو کوه توازو میکند متصدیان تک تک میشه من خشیت الله از خوف خدای عزوجل ببینید کوه الان عقلی که توی انسان داری درکی که توی انسان داری کوه ندارد کوه این عقل و درک را ندارد اگر این عقل و درک را داشت و قرآن را همینطور می تا که قرآن را برش می خاندید تکه, تکه و ریزه ریزه می شد پس اینجا خدای عزواجل به من و شما بندگان خودش دستور داده تشویق فرموده که بر قرآن فکر کنیم، تدبر کنیم، حس على تأمل مواعظ قرآن. خدا ما را برنگیخت برای چی؟ بر فکر کردن روی مواعظ قرآن. و بین انه لا عذر فی ترک تدبر، و خدا داره بیان میکنه ای بنده اگر تدبر در قرآن را ترک کنی عذری نداری فکر کن فانه انه لو خوتب به هاز القرآن الجبال اگر این کوهای که ما میبینیم اگر این کوها مخاطب این قرآن باشند مع ترکیب العقل فيها به شرطی که خدا به اونها همین عقلی که به تو داده همین فهم و که به تو داده به اونها هم بده اونها هم کلام خدا را دریافت کنند لن قاده ل در موازيه در مقابل مواعظ قرآن کو فروتنی اختیار میکنه. ولر رأیتها علی سلابتها و رزانتها خاشع متصدع. اون وقت میبینی با وجود این سختی کو با وجود این استحکام کو میبینی که فروتری کرده و تک تک و ریز ریزه شده. یعنی قرآن اینقدر عظمت داره. چرا تو این انسان متاثر نمیشی؟ انسان را خدا قوی خلق کرده انسان از کو هم قوی ترے ولی باید دلت نرم بشه باید فروتنی را اختیار کنی لذا الله می و وتلك الامثال نضربها للناس این حکمت بیان این مثالا چند مثال شما ایجاد کرد مثال برای منافقین خاندید مثال برای یهود خاندید اینجا مثالی برای اصحاب الجنه اصحاب النار خاندید مثالی برای اینکه قرآن برای خود قرآن خاندی که بالفرض اگر برکوه نازل بشه این مثالها رو می فرمون نضربها لناس ما به نفع مردم بیان میکنیم کنیم لعلهم یتفکرون حکمت این مثالها چیست که مردم فکر کنند فکر کنند بین هو الله بعد ازین این عز از جل مدعای اصلی را که این سوره سبح بود نا توحید بود در پایان هم توحید را بیان می‌فرماید و در این توحید اسماء حسنای پروردگار به کار برده شدند الله عزوجل اول ادعامی فرماد. هو الله الذي لا اله الا هو مراتب مختلفی توحید اینجا بیان میشه اون الله آنزاتی ذاتی که هیچ معبودی بجزء لائق عبادت نیست عالم الغیب و شهاده این دلیل توحید هم همینه اینا همه اسمه و سنه دلیل یگانگی خدا هستن یعنی خدا به این دلیل یگانه هست در عبادت که این صفات را غیر خدا هیچ که نداره عالم الغیب و شهاده ای هو عالم الغیب و شهاده اگر کسی غیر خدا غیب میدونت خب عبادتش کن نمیداند کسی او هست داننده غیب و شهادت ظاهر و نهان را میداند ظاهر و مخفی را میداند ظاهر و باطن را میداند هو الرحمان الرحیم اون ذاتی است که الرحمان خیلی بخشاینده هست حتی به کافر هم میبخشه به مسلمان هم میبخشه رحمان دنیا الرحیم خیلی مهربان است بالنسبه به بندگان مؤمنش بازم اعاده مدعا دعا. و الله الذي لا إله إلا هو. اون الله است آن اللهی که هیچ معبدی لایق ایبادت نیست به جز او چرا؟ چونکه الملك هو الملك. اون پادشاه است. القدوس او از پاک از همه عیوب. قدوس منک پاک منزه مقدس. از هر عیب پاک است. السلام سلام یعنی از سالم از هر نقصی السلام من کل نقص المؤمن او هست که به ما امنیت میده یعنی امن دهنده هست المهیمن او هست که نگهبان است محافظ است العزیز اون ذاتی است که غالب است اون ذاتی است که غالب است الجبار الجبار دما دارد یکی از جبره هست جبیره همه زمینه یعنی جبران کننده است هر مشکلی بیاد مشکلت را حل میکنه جبرانش میکنه و هر کوتاهی کمی ضعفی در تو باشد او کاملش میکنه و یکی این که الجبار از جبره هست، جبر است جبر به معنی چی قهر به معنی مسلط به معنی غالب الجبار اون غالب است مسلط است المتکبر المتكبر یعنی المبالغ فی الكبریا از نظر بزرگی به بالاترین حد و درجه رسیده سبحان الله عمّا اشترکون پروردگار این مرتبه دوم توحید است پروردگاری که دارای این صفات هست اون پروردگار پاک است از اون چیزی که مردم با او شریک می سازند و مرتبه می توید هو الله الخالق البارئ المصور الله آن ذاتی است که الخالق آفریننده است البارئ ایجاد کننده است المصور تصویر و شکل دهنده است ببینید بظاهر وقتی که انسان نگاه می کناد هر ستا مثل هم استند ولی نه فرق دارن. فرقشون اینه علما میگویند که وقتی که شما یک تشبیه بدم و بلا تشبیه هم بگم که یک مهندسی یک را رامیخ درست کنه ابتدا با اون خلاقیتی که داره با اون استعدادی که داره با اون کمالاتی که داره اول این ساختمان را چکار میکنه روی نقشه در میاره روی ورق میکشه بشما میده تمام چیزش را که بالاخره اینجا دره هست، اینجا نماه هست، اینجا نمیدونم پنجره است، اینجا اتاق اینجا سالونه ووه. این نقشه اولی هست، این را میگن خلق، یعنی پیدا کردن، اما با اون تقدیر و حد و اندازهی که هنوز به وجود نیامده. بعد از این که اون نقشه درست شد، کامل شد، بعدن از عدم به وجود آوردن، این هست برع یعنی از ادم به وجود بعدن مهندس چیکار میکنه توسط میمار و استاد و فلان این زمین خالی هست فقط روی کاغذ است اون را به وجود میاره ساختمان را درست میکنه این مرحله دوم شد بعد از اینکه مر... چیش کرد درستش کرد ساختمان را به وجود بعدن یک زیبایی بهش میده یک نمایی براش درست میکنه که این نما باز کل این ساختمان را از ساختمان ها متمایز میکنه پس الله عزوجل انسان را که پیدا میکند این سه مرحله در انسان هست اول چکار میکند؟ اول خلق میکند می الخالق یعنی المقدر لما یوجد هر چیزی که خدا بوجود می،, می آورد ابتدا حد دو اندازه تقدیر مثلا این فرد به این شکل درست میشه اینقدر عمر میکنه سعید هست شقیه هست ریسک چقدر میخوره چه کارهایی میکنه تمام چیزش را این خلق بعد الباره یعنی المختره المنشئ للاعیان من العدم إلى الوجود باره این هست که بعدا تبرق اون نقشه طبق اون خلق اولی اون را از ادم به وجود می آورد بعد از اینکه به وجود می آورد در شکم مادر المصور به اون شکلی می ده به اون تصویری می ده به اون نمائی می ده یعنی یخلق صورت الخلق علا ما به همون صورتی که اراده کرده خلقش می کند پس سین مرحله شده این را تفسیر معالم می و تفسیر خازن فا يكون خلقا ثم برا ثم تصويرا فبس اول خلق بعدن بوجود امدنس بعدن تصوير ونما زدنش پس الله می فرماید هو الله الخالق البارئ المصور است خالق است آفریننده است ابتدا حد و اندازه را البار از ادم به وجود می‌آورد المصور بعداً صورت و شکل بهش میده. له الاسماء الحسنا فقط و فقط برای اواس است زیبا و صفات والا و زیبا يسبح له ما في السماوات والارض ای قالا و حالا تسبیح میگوی برای الله قالا و حالا تمام موجوداتی که در ها هستن و در زمین و هو العزیز الحکیم ان هست ان ذات غالب هست هر کاری میتونه بکنه اما هر کار را نمیکنه کارها را بر اساس حکمت می خب این سوره مبارکه حشر بود که موضوع این سوره هم جهاد بود و در این سوره بحث جهاد با قبیله بنو نظیر بود و شکست اونها و از بین رفتن اونها.